سکوت تو میپرسی تو خوشبختی در این لحظه در این بهار کنار من در میان گروه بزرگ نوازندگان عطرها آیا خوشبختی البته اصل البته اما یادت نرود که خوشبختی در بسیاری از اوقات استرابنگیز است من در لحظه هایی از خوشبخت بودن سخت میترسم شوربختان از آینده نمیترسند بیماران هم اما آنکه از سلامت برخوردار است حق دارد که نگران باشد خدای من حتی خوشبختی هم مجازاتی دارد روزی گفتی بهای هر چیز را باید پرداخت حتی بهای خوشبختی را راست میگفتی و به همین دلیل است که کسی گفته است خوشبختی فردی به تعبیری در انتظار بدبختی نشستن است فقط خوشبختی همگانی است که استراب را نافی می کند و این دقیقا یعنی سیاسی اندیشیدن و سیاسی گام برداشتن اگر خستگییت تمام شد راه بیفتیم خیلی کار داریم عزیز من به یادم هست که روزی مسرانه به تو می میگفتم ما هرگز خسته نخواهیم شد هرگز اما مدتی است به فرصتی میگردم شیرین تا به تو بگویم ما نیز خسته میشویم و خسته شدن حق ماست اینکه خسته میشویم و از نفس میافتیم و در زانوهایمان دردی حس می کنیم مسئله نیست مسئله این است که بتوانیم زیر درختی کنار جوی آبی روی تخت سنگی در کنار هم بنشینیم و خستگی از تن و روح بتکانیم. خسته نشدن خلاف طبیعت است، همچنان که خسته ماندن. دیگر نمیگویم که ما تا زنده ایم خسته نخواهیم شد، بل میگویم ما هرگز خسته نخواهیم ماند. انسان در این راه دراز با این بار سنگین حق است که گهگاه در اعصاب و ازولات خود احساس کوفتگی کند ایبی نیست مهمین است که بتواند جایی برای نشستن سفر گستردن سربربالش محبت نهادن به تحلیل علل درد و خستگی پرداختن انتخاب کند و بعد زنده تر از پیش تازه نفس سرشار حرکت کند ازمت در یک نواختی حرکت نیست، در تداوم حرکت هست، در باقی ماندن میل به حرکت، در ایمان به حرکت، و بازگشت به حرکت. آه اصل، خستگی چقدر دلنشین هست، هنگامی که فرصتی هرچند بسیار کوتاه برای استراحت وجود داشته باشد. اینک باز شهر دود و دناعت باج و اسوات ناخوشایند نفرت و پوسیدگی هرچه شهری بزرگتر باشد روح انسانهای ساکن در آن شهر کوچکتر می‌شود و مصرفیتر کوه‌ها را دریاب دشتها جنگلها و دریاها را دریاب در هاشی دشتی بنشین کناره کویری را بپیما، تن به دریا بسپار ارتفاعی را زیر پا بیاور شاید بتوانی از راه تزکیه روح شهرها را هم نجات بدهی و بچه ها را وظیفه من و تو این نیست که همه چیز را تغییر بدهیم و درست کنیم وظیفه من و تو اعتقاد راسخ ضرب ناپذیر به این مهم است که همه چیز بدون تردید قابل تغییر است و از نوع ساختن ما باید انکار را رد کنیم نرسیدن نهایی را تعهد نرسیدن به قله با انکار قله یکی نیست و انکار قله هرگز هیچ قله رفی ای را نمیساید. ناتوانی من و تو در رسیدن به گواراترین چشمه ها دلیل بر این نیست که به گواراترین چشمه ها نمی توان رسید مادر آن چای بهاره خوش اطر ولایت من حاضر است؟